طریق الهی یه طریق بیشتر نیست سرات مستقیم خدا که همان سرات بندگی و عبودیت هست و به زبان ساده تر مخالفت نکردن پرمان خدا یه طریقه یه سراته های مستقیم ما ندودیم اینکه سرات های مستقیم رو مطرح میکنن توجه به قرآن و سنت ندارن عالم به کتاب و سنت نیستن از راه شعر و اشعار این و اون باورخاشون رو گرفتن و حرفای میزنن اما اونچه چه قرآن میگه و روایات معصومین میگه طریق الالله دارین فقط یک طریقه و اون هم سرعت مستقیمه. وصراط مستقیم ان اعبودونی هذا صراط مستقیم. عبودیت پروردگاره و حداقل این عبودیت عمل به واجبات هست و دوری از محرمات و خرام می خدا.